زیرا ویدی خود بعد مراقبم باشیم و خودمون کد بد دشمنمون ندیم حالا اومدن مثلا این مصنع ساختن آقا مثلا از الله سیدی شما کلی اون پنج روشگاه و سهمیص با کار می‌کردن تو دل روایت‌ها ما مشتری رو بیرون می‌کشیدند که خودش رو آماده بکنن برای مقابله دیگه شما تو زحمت کشید آماده گفتید آقا احتمالاً مثلا سد اصلا سیدی امونی من تایید نمی‌کنم سیدی امونی باشه نشونه تا در سیدی بودن یا نبودنش اصلا توفیق نمی‌کنه در اراده بنده رسالیشون من شاید بگم چند نفر توی ذهنم هستن که اگه ببینم پاشونو میبوسم یعنی به پاشون میافتم یکیشون سید حسن نصرالله خب حالا نگاه بکنید آیا حتما برای اینکه مثلا مثلا رهبر جمهوری اسلامی با سید باشه تا مثلا ما بگیم آدم خوبی است چه استدلالی خب ما یه سری گزاره های دینی داریم یه سری گزاره‌های هیات منزهله ابو عبدالله جلو چشونه هر ایشون چه سید خراسانی باشن چه نباشن اصلا دخلی به این مطلب ندارن خب اما بیایم حالا فرض بر این بذاریم با ما یه مطلب بکنیم خب دشمن بیاید روی این مسئله زوم بشه ما روایت داریم که خیلی وقت ها شیعان ما با لو دادن برخی از اسرار ما ظهور رو باقب انداختن خیلی حرفاها یعنی چی آقا؟ آقا ما محمد باقری کلی زحمت میکشید آقا ما جعفر صادق کلی زحمت می‌کشید یکی نفوس میده تو دستگاه عباسی آقا طرف نشسته دارن فوش میده دیگه چون نفوذیه دیگه خوب نقش کرده تقیه کرده نفوس کرده و تو دستگاه عباسی حالا چند تا شیه نشسته دارن یکی فوش میدن بر پدر مادر فلانی نه نه چقدر ظلم می‌کنه وزیر دستگاه عباسی شده یکی میشه نه آقا توهین بهش فوش نید دیالو نمیشه گفته. نه آقا تو رو خودت چی شده فهمیشون خودیه جدا آره میگنیدی فلان شیعه رو گرفتن چقدر زود آزاد شد میگنیدی پول احراس میگیا فلان طرفو میگرفت میرختش حضرت فهموش شما ظهور تشکیل حکومت مورد لقب بالنسبه کاراچ پس اینا یه سری موضوع تخصصی ما نباید اینا مثل اسرارشی است نه در کسی گفت خدا تحلیل غلط نمونه میده ما خودمون نمی تحلیل بشون بدیم تحلیل درست بشه بدیم ببینید دشمن برنامه میکنه به قول هاشم سید قاسمی یه حرف میزنه حرف ذوقیه حالا ها چون بیمارن و مریضن میگن ممکنه تیکه صحبتیشون رو کات بکنه ما از الان میگیم این حرف ذوقیه هم قش جالبه یکی <تصح> <تصح> از بزرگترین مقلدین امام صدام بود امام تا فرمود که جنگ در رأس امور است صدون چهار تا بذارتونش تعتیل گو این خونی میگه قابل چیز نمیده خب یعنی اونا میدونن اونا بررسی میدونن جبهه حق بررسی میکنه موقع حواسمون باشه بله الان ماجرای عربستان بیشترین نشانهاش بو از رو جورده ماجره سوریه و شامات شامات به صورت عمده یعنی شامل اردن فلسطین و لبنان همیشه و بخش از عراق شمال غربی عراق رو هم شامل حالش میشه این منطقه بو برخیز روایت جوره شده آقا قبلا هم جور باشه نباشه بله در زمان متحر هلی برادر همه علام هلی معروف خودم ایشون میگفتش که قطعا زهوره رسیده بود به این مطلب مگفت ببینید آب فران تو کشیدن آوردن تو خونه ها جوب کرده بودن آب آورده بودن نهر آورده بودن خب بعد این الان با زمان ما هم جور در میاد نه دوله کشی کن آوردن تو خونه ها درسته؟ یا ما بوده که برخی از علمای خودمون حالا من اسم برم دیگه یکی از علمای قدیمی خودمون فرمود گفت چون فرمود میفرمونه که سید خراسانی من نه من هر چی بررسه میکنه از من سید خراسانی پیدا نمیشه تو از حاضر اما نبوده ببینید این نشونه ها میتونه درست باشه بگم چجوری ما پا امام وای میستادیم وای ما محکم اما اواخر جنگ بعضی از آقایان الله کاری ما محل بحث من نیست که امام بعد از پذیرش قطنامه فرمود که بعد از اون عملیت مرسال فرمود که من می دانستم مردم اینطور در سحنه پس قطنامه را قبول نمی‌کردم و با امان جامع زهر یاد فرمودن یعنی چیانی یعنی تحلیل های غلط به من دادید خب آقا ما محکم وای می چه بس تو ظهورم شکل می گرفت اون موقع امام می سید خراسانی صدام هم صوفیانی. شد صوفیانی بشه خب. ما ما خراسان چه چیزی تعبیر می‌کنه؟ مثلا یعنی ایران. خب ببینید قابلیت اصلا قابلیت تغییر داره یعنی ببینید لفظی که شده ایهام داره. خب الان حوزه سوریه و بنو اردن. عربستان ما آماده نباشیم و میره 100 سال، 200 سال، هزار سالی. آماده باشیم ببینیم هم... به قول آیت الله بهجت شما دوشنبه آدم بشید، دوشنبه آقا میاد. زیاد جمع هم نباشید. این اصل شرط زبور اینه که یه نوشتی کوتاه بگم یعنی یه دقیقی خیلی قشنگه اگر اینو گرفت مخاطب من و شما مشکلان حل برای شکل حکومت و معود دو شرط لازم هست یک امام آماده که این شرطی که همیشه چی شده لحاظ شده یک امام آماده امیران بهتر شما میتون گیر بریم امام آمد بالا اباخر حکومت امیرانون این چی میگفتن؟ یا علی مدیریتت به درمان نمیخواه مدیریتش بهتره مبناشون مبنای مبناش شکمی بود خب مبانی فرق کرده بود 11 تا امام آماده و حاکم آماده 100 در به اون تاپ لیویل فرستاد خدا که قبل نمیدونن فلزا اون آخری زخیره الهی رو کی میفرسته؟ زمانی که معموم آماده آماده بشه این معموم این رئیت این مردم وقتی آماده شدن او هم میاد اون موقع یه امام منصوره چرا؟ چون امتش رو پیدا کرده نه اشتباه گفتم امتش او رو پیدا کردن. منو شما آماده نشین تمام اینشون ها کشک ها چی نیستش تا حالا 500 سال از حمله مغول که صورت گرفته بیا یه و مجو اومدن راست گفتن گه یهجب مود چینی مغولی دارن؟ خب یجب و مجوور که بودن زل معجب غری من آخرین خلیفه عباسی هم مهدینامی بود حاکم بود او هم ریختن ازلش گرد همه چی با نشان ها اون نشد چرا؟ چرا اصلا اگه فرض بر این بزارید اونا هم اصلا میکردن میداشتن کنار چه اتفاق میخواست بیفته؟ اون امت آماده کجا بودن؟ هنه امت آماده نبود استاد تو حالا توی این بحثتون یه سوالی که پیش میاد. اون برداشتی که ما میتونیم داشته باشیم چون فهمونی از زمان امام و برمان سادم یعنی از اون دوران تا الان توی این چندین قرن همیشه زمین ساز زهور وجود داشته همیشه علائم زهور وجود داشته ولی به دو دلیل این فهوای کنام شما رو که من برداشتم این است یک به خاطر عدم استقامت مقمنین برای حق و امامشون و دوون به خاطر آماده نداشتن برای مقابله برای در واقع پای امامی ستادن در پای امامی ستادن این دوتا ویژگی نبوده حالا ما چیکار میتونیم بکنیم توی زمان خودمون این دوتا مسئله و دوتا ویژگی رو داشته باشیم که حداقل بتونیم طعم شیرین ظهور رو بچشیم احسن این سال کاربردی و خیلی خوبیه آقا مامصاد فهمید چرا از قیام نمیکنی حضرت گله بوزو نشوند گفت بوز قهوهیشو بشورد شمردن یه گله گوسفندو گفت چند تا بودن جان حضرت فهم ما که تا آدم پاکار می‌داشتم، زبور بر من واجب بود. خروج بر من واجبان بعد باید, باید قیام می‌کردم. یعنی اینکه قیام نمی‌کنم که جواب پس می‌دادم. خب؟ اون جایی که خودمون یه سوال از شما می‌پرسم. فرض بکنید حرب بن ریاهی جلوی ام حسینو نمی‌گرفت. حضرت میرسید به کوفه. درسته؟ مردم کوفه هم احتمال اینکه باش به عزاد بیعت بکنن بودا. چون خود ابن زید با چه عنوان کوفه شد؟ شکل خوش شکل حضرت بلا مثل سبز آمد اینا برگ نخل خورمان انداختن اون آدام و مصوم استقبال عربی خیلی باید دن اه زیاده یعنی یه مر مردمی بودن مانگولی پنجا پنجا گیر کرده بودن هر طرف متزلزل بودن خب اینها اگه حضرت میرفت رفت ولی یا ای بی داد بیداد داد هر نزاش بیم نه تازه اگه حضرت می رسید کوفه می شود مثل امام حسن که از اولا تو کوفه بود تازه اگر مثل امام حسن تو یک شب 80 هزار نفر نمیرفتن نازل تنانی می تو یک شب خیلی حرفا نه ایمیل بوده نه اس بوده نه شبکه خبررسانی جمعی بوده تو یک شب 80 هزار نفر بیاتشون میشدن با ترابل هم هر خرید والله بالاتر از این حالا نه می می گفتن که از اه... مسلم عقیل نماز مغرب رو مردم به امامت مسلم خوندن نماز عشا رو به امامت ند زیاد یعنی به این فاصله فاصله برگشتن خدا پدرتون بود تازه امام حسنا هم, حسن هم به یاد میکردن. تازه میشد بخواد میسه کی؟ مثلا حضرت علی. واسه سه تا جنگ میکرد با معاویه زمان خودشانه با یزید آقا امام حسین با جنگی. مردم آماده نباشن اصلا زنگو معنا نداره. تا اون جامعه شکل نگیره، اون جامعه آماده، جامعه آماده ذهنی نها. شما بیا مسئله تربیتی اینو کار بکنیم اما این آزمون پس نداره. نه حرف مزخرفی. تو مسائل ذهنی عقیدتی اینا کار بشه و اینا تو عمل هم آزمونشون چکار چیکار کنن؟ پس بدن به عمل کار براید به سخنرانی نیست آقا اصلا به سخندانی هم نیست خب برای چی؟ برای اینکه اون باید جنگ بشه شمشیر دست بگیره امامش بگیره یک نکته قشنگ خدمتون حضب کنم مشکل صحابه بعد از پیامبر این بود که پیامبر امامتش رو درک نکرن فقط کنه برا میگفتن چون پیانبر و پیانبر. پیغام رو پیامبر پیامونو میخواد چیکار کنه ببره میگفتن تو دیگه پیغمبری تموم شد کل پیغامو ما آوردید قرانو حسبنا کتاب در زمان امیرالمومنین فتنه ای که خدا اینا رو دو چهارشو کنه و آزمونی که پس میگیره خود امیرالمومنین میگه به کتش شمشیر بزنید به کتاب الله درست نه؟ میگه به صفحه قرآن شمشیر بزنید آیم مردم آماده شده داشتن همین الان هم بچونون به کرده بودن خلیفه نه امام همون که اون خلیفه اول دوم و سوم بیعت کرده بودن نه امام تو هم مثل بقیه مون تو اونا نگفتن به شمشیر چیز شمشیر قرآن تو دیگه خیلی یا علی حدود خودتو رو گم کردی ها چلو قرآن میخوای بسی ما هنوز میگیم حسب اونها کتابوندا امامت درد نشده ما بعد آقا صحابه زمان برای مردم درک بشه مقام ایشون جابی افته بعد ما حاضر بشیم جان و مالمون رو در راه ایشون بدیم سوره توبه 24 یا 22 یا 24 بهتون 90 درصد 24 میفرما خداوند متعال اگه تونستین این هشتا چیز در راه خدا بدی تازه فاسق نیستی اگه <تصفح> نه فاسقی ابناکم اخوانکم ازواجکم اموالکم مساکنکم تجارتون تخشاونو که ساده ها حالا من ترتیبش رو درست نمیگم ها همینطور خوب میگه زن و بچه و برادر و پدر و پول و خونه و سود تجارت میگه اگر اینا احبه الیکم من الله و رسوله و جهد و فی سبیله فتربسو حتی یعت الله به امرهی اشتباه اگه اشتباه نکنم بله الله یعت الگام الفاسقین میگه و اینا فاسقی خب من همین الان خودم بسنیم ما اگر دیم جامعه رو آمدیم و جمهوری اسلامی مثلا هدفش همین بود جمهوری اسلامی اومد گفت اگه من ما میخوایم واظریم خوشو هستی این اصلی ترین شرط بوده. این محقق بشه ها صد یک نصفش اون موقع میاد اصلا ما داریم که در برخ از نشونه زهورده صورت میگیره بدو یعنی چی یعنی خدا در این همه چه عوض میکنه خب وقتی بدو ما داریم مسئله شو قبلا هم اتفاق افتاده بدو صورت میگیره اون موقع آقا سفیانه نمیاد آقا میاد اصلا تو داریم, داریم که بختتن زهور بخته یعنی یه هوی. یعنی یه دفعه میکه ای شد این اما حالا به خاطر اینکه موضوع بحث شما هست این نشانه ها در واقع یه بررسی بشه هم تحلیل سیاسی بشه هم دینی بشه و در واقع هم تحلیل آخر و زمانی بشه ما اینو بررسی میکنیم خب اما خب میگم این وقت اصل نشه بیانه همینه بعد این ممکن مردم دل سرد بکنه اصلا برادرم جواب که سه دسان اسرارالله هم دیگر نشود سه دی بعد خدا نکرده سه دباست مسابقه شاید شه. بعدی چند سال بعد می‌گذره شما زنجیرت زنجیراتو جور کنی، پازل توی بیار بچینی، تا همین الان چند نفر کاندیدای سید چیز بودن، شاید به ببنی بودن بدن. از آیه هاشمی رفسنجانی شروع شد چون توی روایت داریم خفیف لحیه یعنی ریش کم دارن. مواسن کم. محسن کم دارن. بعد اول شدن هاشمی. یه مدت گذشت چون فرضاً جنگ سید خراسانی هم بود دیگه، سید خراسانی موقع بود. چون اواخر جنگ دیگه مسئول جنگ بودن. بعد دیدن نه نشد بود. تو چی کار کنیم بعد بگیم دوباره جور کنیم خدمت شما عرض بکنم بقولون رهبری گذاشتن سیده خراسانی، آقای شمخانی شد چی آقای رحیم صفحبی شد شایب نساله گفتن آ از خمین فول لحیه بودن یه خورده گذاشتن آلا بشتن خود منازمه بیشتره بعد کار رسید به آقای شمخانی به دفاع بودن خب بعد حتی ظاهرن ایشون تو محلشون شوهایی بهم صدا خب. بعد میگفتن دیگه خود و خودشه کار بعدش تا نه ایشون از وزارت فلان شد راه وزارت دفاع کارش با آیه احمدی میرجا. آله آیه که دیگه ریاست جمهورشون تموم میشه. حالا چیکار کنین؟ خب یعنی اینا اینجوری بخادیم این باب بشه سنگ رو سنگ نمیشه. و این دل سرد میکنه میشه استراتژی چوپان دروغگو. یه بارم واقعی به خدی همش بیفته بیافتام هم. میگن ای بابا گوشمون پر این حرفاست. میگفتن فلانی اینه فلانی اونه. خب این خطر داره الان از همه مباحث سوء استفاده کردم همین جریان المنش داوی، عبدالزهرا و بعدش همین احمد الحسن الیمانی میگن ظهور صورت نخواهد پذیرفت تا اینکه ما هزار تا از مراجع و به زمان هم یا به قط چون این هم مراجعی زهور بودن خب ببین؟ دشمن تو دو دل همین نشاناتی ظهور مده چی میکشیده؟ جریان رو هم داخته میگیریم مرجعیت شیعه را بزنید خب شیعه به مرجعیتش سراغ کی بره؟ مشا مرجع شما میشه مرجع این توسه بزرگوار فیلم بردار نه همه این شما مرجع خب اون موقع هر بر مبنای خود شروع کن چی فتوا دادن اون وقت میشه چی پروتستانتیزم مسیحی همون بلایی که مارتین لوتر گفت خب حل کدوم شما کشیش خودید مرجع میخواد چیکار مجتهد میخواد چیکار دل بده ایموشو بگم دلت پاک بشه مسجد میخوای بری مسجد تو وجودته نماز هم بخونی خودم اگه بلد نیست زبون فarsi تو دلت امجوری دراز بکشم هیچ شدین میخواد بونی اپ اینا این فتنه تو ذروت ظهور اومده بیرون ها این فتنه ها از عشق به همون زمان اومده بیرون ها این فتنه ها از تو کجا بیرون اومده از این که میل به ظهور آقا صاحب زمان در شش سال اخیر یعنی از 2006 به 2012 دو برابر شده است در مناطق مناطق و میل به ظهور حضرت مسیح در کشورهای مسیحی نشین دو برابر شده است چهل درصد الان مسیحی های چلا هشت درصد مسیحی های امریکا میگن در دوران عمر ما یعنی تو بازه چهل ساله قطعا مسیح زور خواهد